بلدم شوارد اینجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی رسول الله و آل طیبین باقرین المعصومین لا تجعلنا مع الظالمین اجمعین اللهم احسن خاتمتنا واجبر مش مرحم نا به رحمت کیا و مرحم نا به که علا خلاف علا رقم ملو باطنی بخص یک نزای طولانی شد بنامه هم ندود کفتیم مرموم شیخ قدس الله نفسه در کتاب فهرست خودش یحیی نه عبدالرحمن از رقم رو ارده دیگه بحثی آشاد جمع کنید با که ایشون از راه فهرست همید که نسخه مرحوم عبال مفرزل شیبانی باشه از شد این نسخه در از ظاهره همشون مرحوم نداشی ظاهره همشونه که آثار عبال رو گرفته از خودشون سلیمه لیکن شد عبال مفرزل اشکال داشته از او رو وارد نمیشه گامی و قاسم اگر از عبالون فضال نه یه حد با این که تحلیز شده یه حد دستنی عبالون فضال یه قاله عبالون فضال یه دیتونه مطلبش درست و هر حال ظاهرت این دو تا طریقی رو که برمشه از فهرست همید اولن در اختیار مرحوم نجاشی بوده لیکن ایشون اشتاد بشته از اون راه نهر از احتمالا از همون راه فهرست مرحوم تا نبوده و نگار باشه به احتمال قوی هر که اون مشکلی که در این دو تاریخ مرحوم شیخو در ذات مرحوم استاد میشه هر تای ضعیفه نظر ایشون به خاطر ابوالمنفذره که در این تاریخ هست مضافاً که در تاریخ دوام قاسم اسماعی هست تاریخ شده در به قاسم اسماعیل صحبت های خاصی هست و در همین جا هم خیلی به و نکات طولت های هست یعنی هر چی فکر می بگیم بگیم بگیم خیلی یه وقتی انشالله همه یک سالی گذشته بشه چون دعید ویزویان بگیم جایی که لطافت کار در کار قاسم اسماعیل باشه انشالله یه وقتی گه نکته‌ای که در اینجا هست در این تو اجازه م شهر توسی برا تضعیفش به یک معنا چون ظاهر اونه عبارتی که ایشون ای کذاره نه که آیه خوبی هم می نشونید یک معنا دیگه مراده میگم لطیفی داره چون از نکات لطیفیست که مثل اعلام این خندم توشی گیر کردن باید یک وقتی یک توضیح کردن اشارا از ما آوزه ما رو خیلی کمانی شد بس. نقطه ای که در دین و طریق هست این نقطه ای که فرمی رو من اعرض بکنم خیلی مستبعده که ابن سماه چون داره حمید این ابن سماه این حسن بن محمد ابن سماه فوق العاده مستبعده که ابن سماه از اصحاب ساده نبود این خیلی مستبعد فوق العاده مستبعد فوق العاده و خصوصا در این یهیر ازر بیشترین روایات روی که ما داریم از سفوانه سفوان این یهیر ازر و ابن سماه از سفوان نبی اومد نقل بکنیم این درسته از ابن نبی اومد و یا سفوان باشه درسته اما مستقیم کنه بکنه خیلی بریده فوق العاده مستبرده و همچه این قاسونه ای اسماعیل هم همین مشکل مشکل رو داره که مستقیم بتونه از ارسا به مانساده مره من. چون یه ی یعنی از, از بقیه دو موساده و موساده و موساده مثلا عزاده عزاده اما امام ساده و امام ساده و امام ساده بله مثلای موسیم جرپر رضا ازاد ممکن بود یه عزو حادی اما امام صادق و امام جعفر بسیار مستبعد فوق حضار مستبرد نه پس قیل از اشکالی که مرحوم استاد ترمزن به خاطر وجود عبورم فضل این مشکل پیش میاد البته این مشکل اختصاص به اینجا نداره. این فنی داره ف من همه این رو کار که شو نمیتونم در واقع اون کتاب عبال مفضله منشه اشکال اونه. یعنی عبال مفضل اینجا اجازه داده شما عرض کردیم این فهارت از اون قائزه فراموش شده در یا اجازات هست یا فهارت هست اینجا عبال مفضل به اجازه دادیم به مشایخ بقدار که اینا اجازه دادن به برمون شکل توسید و یا جاهایی که عبال مفضل اجازه داده ده داشتیم ولیکن خود عبال مفضل از فهرست و همه چون همه فهرست داره من یه نکته رو بردی نکاس رو تکرار میکنم با خاطر رو باید ما از کلید در میراث اصحاب خودمون چون دیگه این نحوه دقیق در میراث اهل سنت نیست ما اصولا دو فرصت داریم یکی اجازاتی و اجازات دیگه و روایاته یعنی یک شعنش هست در کتاب فهارس و اجازاته اون جاهارس که به کتب و گاهی هم در کتب روایاته روایاتی که شده و نصفت بین این دو عنوان امون خصوص منوجهه خود لفت بکنیم مثلا ممکن است یک کتری در بخش اجازات و فهارس خیلی شعن داشته اما تو بخش روایات چنین نداره مثل الان نجوشی تو بخش اجازات و فهارس نقش اساسی که شما داره اما کتب روایت نداره ایشون تو روایات نقشی نداره اما توی اجازات و فهارس نقش بزرگی داره عکس ممکن است در روایات نقش بسیار بزرگی داشته باشه اما در اجازات نقش نداشت باشه مثال بارز بارزش کلگی این کتاب کافی ایشان خیلی نق اما در کل کتاب نجاشی شیش مورد پنج مورد کلی هست. من چه در از زندگی مرقوم کلی نیست. من راوی آثار نبوده‌ای. اصولاً مرقوم کلی زندگیش با گموز همراه نمی‌دونم چرا در در خودم چه که واضح نیست این مدتی هم که در بعد بوده همینطور. یکی از رموزهای زندگی مرقوم کلی با این جلالتی شانشه. خب واقعا خاکی چرا نه هر وقت ما تعوذ نمی‌دونم صاحب کتاب بزرگیه. خیلی زرافت های حدیثیه بالایی بذاره همین که ندرسی در باریشون یه او و در حدیث و اشبهت و هنفیه راست میگه فوق الاده است آمون کنه قدس الله و ایشان بزرگتر این رو در روایات داره اما تو اجازات و ایشون نخش بسیار ضعیفی داره فوق الاده ضعیف و ادهه هستن که هم در اجازات نقش فرامانی دارن و هم در اجازات روایات که مثال بارد چیم شهر توسی شهر توسی با تعلیف شتابه تنزی و استثاب در روایات ما خیلی نقش داره و با تعلیف کتاب شهره در اجازات و پهارت هم نقش داره شهر توسی از استثابه که در هر دو مورد نقش داره این دو مورد را هم با هم خلق نکنید یکی مورد روایاته یکی مورد اجازات و هایست مردم شهر توسی در هر دو مجال در هر دو مهور تأثیر گذاره این مثال بارزش در علمای به اصطلاع که میشناسیم ما این مطلب رو مخاطم در این دکتر رو کنم توی علمای سابق هم داریم نه حالا در طبق کلینی و نجاشی و شهر توسی که افرنده و یعنی حوال غرم چهاران شیخ و نجاشه میانه اول نیمه اول غرم پنجو ما قبل لبذاریم یکی شمی نزیاد به خاطر اسم همیده. همیده که از چهرهای عجیبی ویزن ساخن در این اینکه واقعی هم هست فقیه هم است و این نقطه که ما خبر داریم ایشون مفات اشتیصال ما بعد از همید فقیهی در حرکت مثل ایشان دیگه وا شاید بعد از واقفیه در زودسه باشه آخری شخصیت علمی بزرگ در واقفیه همسا به واقفیه بعد از این وقت کلا. ایش ترون گفت که شخصیت علمیشون آخری شخصیت علمیشون همههه بگه ما بعد از همهه که شخصیت علمی در واقفی نداریم که در کربلا هم از خیلیشون وفاد بده خواب که خوابی زود که وفادش کربلا باشه آمد از گروفه به کربلا همجر حمید هم مجال روایات ما نقش خوبی داره این و از که این چهره ها رو شناختن نخش ایشون در روایات ما در کلینیه بیشتر که شاگیر به ایشان بوده از خون پیش ایشان آمده و از ایشان حدیث کرده صدور نداره صدوق شاید چند در زدگی ها رو باید از خونه داشته شیخ هم اضافه بر اینکه که از کلیمی گرفته که خودشان جدازانه داره از آثار همید و که و پرونترین نقش همید ابن زیاد در آثار کلیمیه در این حال هم در فهارس نقش داره الان ماهیدی زیاد در فهارس حتی در فهرس مرحوم نجاشی این طوری و اون نقش ایشون در فهارس که چون رسولوسیشون توضیح دادن است که اجازه میخواد کتاب از بغداد در کوفه یکی از راه که از بغداد میره کوفه همونجا نزیاده چون من توضیح دادم چون خیلی از بحث های اجازات رو بردکی کردن یه بحث کبرری هست لطیف انسان بونا افتراد شده باشون همه خیلیش ها از کتاب مرهومه. یا بیشتر از شد از نین چون استفرار نکنم نجاشی از بغداد رفته قوم از قوم رفته کوفه که این هزمت قوم نشون میده. خیلی مهمه این مطلب خیلی قابل رحمی چون دلاشت ها کوفه نزید تر از بغضاد بود یه مقداری هم مستقیم از بغداد رفته به کوفه معلوم میشه که این میراس ها در قم جا افتاد تصالی این کتاب رو یحیب نهب و نهب هم اینطوره. ساله ایشون به این سه تا که ما داریم تمام از بغداد به کوفه هست. این راه انتقالشه مثلا در اون کتاب و نجاشی انتقال راست تاثریه از بغداد راست تاثریه که کوفی در اینجا انتقال توسط و این انتقال توسط و در تاثریت ما نسبتاً زیاده راه دیگه هم هستان نمیخونم متعرض بشون راه دیگر هم هست این کبرایات رو یاد گرفتن خیلی مؤثره یعنی میشه کتاب نجاشی رو اصلا بینه همان تحلیل کلی کردیم از بغداد به کوفه از بغداد به قوم به کوفه این اینه تحلیل کلی کتابه اون در راه قوم به کوفه هم یک کلی یاد داره یک کبرایات داره که نمی کاموارد بشن از بغداد به کوفه هم کبرایات داره که یکیش مثل پس اون همهگه یکی از چهرهای مهم پس همیده نزیاد با اینکه که از شهره هاییست فعلا در میراس های ما هم در اجازات هم در هسانی تأثیر داره هسانی مراد ما روایات اجازات هم مراد ما فهارس. هم توی فهارز و هم توی به اصطلاح کتب روایات ایشان تأثیر گذاره همیده نزیاد اصطلاح تأثیر گذاره خب مرحوم شیخ به تو طریق نقل کرده این دو طریق هر دو مشکل داره حالا باغت از نظر این طریق مرحوم شیخ حنده قمیتوش ابو متفردی که مشکل داره <تصفح> بخ منم ها راه را من رو خدمتتون از قم کوبریاس و روی سرعت رو می خوام ب در این جور جاها به طور متعارض دو راه گفته میشه وقتی گیر ادنه سماع نمی تونه بیان علل اذرع نره چه که در این اجازه شده به طور کلیش مخوابند. من اوکیلی مصبب که کلیات یاد بیگه یا تصیبهش روی خودتون به طور طبیعی دو راه به طور طبیعی هست به طور طبیعی یعنی حالا ممکنه هر رایش رو تخصیم بجه به چند راه به طور طبیعی دو راه یه راه که یه نسخه اولون فضا قلق داره مثلا سه یا به عبارت فنیتر مشکل مشکل اصباتی باشه یعنی علم ما ناقصه اصلا با مثال مخوام بگن اصلا در فهرت به همه این تو بوده کتابه هایی که حسن و محمد نسما ان سفوان ان مثال خودم و بعد گفت انهو ان یه یه لازرم انهو با ان یه شد سفوان این کسیال کرده انهو یعنی حسن و محمد نسما با مثال مخوام بگن یه مشکل این رو بزنیم به اون راوی اجازه به طور کلی علیه. چند احتمال اون بحث دیگه ریست من باید احتمالات نمیشه. بگیلی مشکل اینه اصلا, اصلا مشکل این بوده عبار مفرزن در سهمیده توی نصف مشکل نبوده یا توی نصف مشکل ایشون صرف داشته انصفان داشته افتاده یک مشکل پس یک حل مشکل این اصلا که ما به سر متعارف از این راه میشیم به سر متعارف ما یک نصف علق داره یا قابل عبار نیست. این را روشن راه راهای اینجوری که راه برگرده به نسخه اول می‌خازه این یک راه راه دوم که بیشتر جنبه ثبوتی داره اون میگه نه مصحف مجبور بود دروغ‌هاشون درست بوده کرده سرکره دروغ نگفته نسخه صحیحه ایشون شده مشکل دیگری داره که اون این از که شاید حسن محمد بن به نذر رجاده نقل کرده خود دقیقاً هفت شد درسته طبقتن ابن سماعه به یحیل از نمیخوره تو. طبقه شون به هم میخوره خواهدن سطمان باشه و ازت باشه با ترینه روایاتی که ما داریم اینجا نمیخوام من اجازات و با روایات درست کنم وقتی به غیرین روایات نمیخوره طبقه نمیخوره و سور روایات زیادی که این سطمان هم یحیل از و این اگر باشه مشکل نداره پس یه چیز بگیم بگیم نه همینطور رو بوده سخص نداره دو پروشن شد احتمالا ابن سمایه مبناش این بوده که اگر به نهره وجاده باشه میتونه به نهره انعه ترگیه بکنن سخصی در نصف اون فضایی میگه اشکالی اگر باشه حالا اشکال مبناش دیگه چون توضیحاتی رو چند بار عرض کردم حتی داره چند خودیم توی بحث و جد خبروار دارم ت روایت که امام جواب نرو کردن که اگر بدانید کتاب مالبوره نسبت بودید هندسوگاه میگه کتاب ها درم شدن درمی شدند دیر در این شدید بود حالا در رو بودید میگه اگر میدونید ممیدونید مثلا این کتاب زرارت آن بگه شاید نر رو کنه اخی چیم بودید همه حالا توایش کشن رو کنه این یک تصوری بوده اون رو باسم قبول نکرده شان اجازه به اجازه تجرد هستین که این م含اری رو بفرم. این خیلی مشکلیه. یعنی چون یکی از مشکلات دیگر از دیر سننیا در این محافل‌ها به ما مترجم میکنن همین‌ها که لباس او بر و شی اجازه می‌ده به نحو وجاده باشه، ما از تعبیر درهنه بکنیم. چه یه مشکلی. از نظر فنی حدیث ما رو خیلی زیر سوال می‌بره. ده کلو کنشون. الان آقای ما غالباً یه چیزی در این حوزه ها می‌کنه ترجم نداره این فند خودش بشته خاص خودشی داره لغت خاص خودشی داره و نمیشه مصابه رو که مثلا صحابه سال صحاب به همه حدیث فرکار داده که اگه کتاب مشهور باشه نقل برو این نمیشه عبود کرده این مشکله اون رواست نمیشه عبود کرده سنده رو بروشنگیست لاهرد بکره رو کسا به خلاه ان خلاه اینجا مثلا یه ان ان ابن سماعه این مشکل سر کلمه هست. ازدهی ای تصالبشون این بود که چون امنی سازه با اگر گفت حد این مشکل داشت اما از با انها اشتار نداره باب اینو هم میتاز به واقعی هده سو په ها نداره که انها داره این مسئله تحقیص کنید بر مضاقه ما رو گفتیم اینجا هم بلی مشکل اصلا معصم بود اون هده سو مشکل هستی کسی دیگه حد دستنی هم انها بگیم یه مشکل حتی خدای تا, خیلی و خیلی تا خیلی هم می تو اینا کلام اون که یه حدس نیام هم اصلا، اون کیه خیر؟ اوه، افیا با خود و با خودش کیه شده، اون کیه خیر؟ کارت فکری که خیلی حدس نیستی. ما انجوی شرمندی میکنیم که از به حدس نی. روز روز حدس و باهاش ناگو تو هر. اما که که ما کن، پس اینو من ایجاد کردم برایی که روشن بشه. این جور مواردی که پیش میاد، احتمالاً این حل این پسر بیایید از این دو یا احتمالاً نسخه اول مفصل خالص داره که ما الان غالبا این جواب خود میکنیم که نسخه سه داره یا احتمالا مشکل بالا سر از این معرفات مبنای حدیثی ابن سامان مشکل داره و اون اینکه کتاب یهودی اذیت به نهر دیدجاته به مرزاگه گفته اما و این وقتی تو اجازه همید از نزیاد تو فیلت دو نزیاد این مشکل بیشتره این یکی اون سخت نسخه راحت تک این یکی مشکلش بیشتره نه یک است که در ریز کاری های اصالی به اجازات باید در نظر گرسه بشه و راه هایی که گفته شده برای حل این مشکلات از کردم این مطلب رو ما اگه قاسم اسماعیل رو ن یه توضیحی هم اجرا بود چون مرحوم استاد عدی مثل مرحوم تو سلیم استاد از عباراتی شدی معنی که فهمیدن که خیلی غیر متناسبه با اون مطلب و بحث دیگر هم داره که اصلا واقع متعرض نشدن من بحث‌های خیلی اجمالی می‌گم که تو این سری فولانی اینو چطور نمیشه اینو ما احتمال دادیم از همین قاسم اسماعیلی و حمید زیاد یه مقدار اصول بین اصحاب شهرت کردن <تصفيق> چون هیچ از ما گفته در اول چون من ارز کردم اینکرار شیخ تا اصدار اصدار دادش نگه تا اصول در کلمات شیخ زیاد در کلمات نجاشی کرد. و توضیحاتش رو ارز کردیم که حالا مشغول نیست که ارزش میداره و ارز ما یه اختبالی دادیم که بعید نیست که واقفی ها منچه این اصطلاح بودن واقفی ها مثل این ای دوی ها و یکی از کسانی که در فقط واقفیه ترسیل داشته در انتشار این و عنوان و بسیار همین قاسمه اسماعی باشه دیگه من باید بحث میشم که این خیلی طولانیه و کسیدانه میشه خیلی مقدمه نیسال رخی این به دو فهرست این دو بزرگوار در تارت همین اصحاب ساده قادم یحیبن عبدالرحمن از رقل انصاری مولا کوفی این محلقه به که ایشون در رجال بودن نمیدون از کجا گرفتن چون ارز کردن مرمون نجاشی چیز ایشون رو ایشون رو متعرض نشدن و کنیه ایشون و عادت هم ارز کردن در ملومات شیعی ما نجاشی به نصر اونها بیشتر پرداخته شوش کمتر نجاشی این جهاز رو به خودشون کتاب انصاب العرب جان متخصص تو در, در انصاب و هر حال اگر عبارت شهر شما هم نمیشه از کجا گرفته چون در کتاب برقی نیامده در مصادر قبل شهر نیامده حالا از کجا این عبارت رو گرفته از چه کتاب بوده ایشون گفتی ایشون انصاریه از با قایزم به مدینه و از این عبارت همون شد مولاست حسیل نیست عربی حسیل نیست من دیوزم بخواستم عرض باییه این مختلف بشه. از عبارت نجاشی هم جای نسبت نداده احتمالا همین در میاد که عربی حسیل نداده این دو تا مطلب این در نجاشی نداریم انا منحسرن در اجاز شکر یکی حل انصاری یکی مولا این عبارت را خوب توش کار بودن این ها واقعا زرمت زیاد که چیزی شد تا مبارسی فعلا خود من برای این جایی ای رو صلاح ندارم یعنی میدارم که ایشون شیخ هست که جا گرفته نجاشین از هر چیزی درشت نجاشین او نجاشین دقیقه یعنی شون میابرد سالی مولا. مولا هم سوالی مولا پس عبارت در رجال شیخ نقطه هست که در تهلت خود شیخ هم نیست و اخران اصحاب کازم سلام از اصحاب کاظم علیه السلام مختصر لبوی یحیی بن عبدالرحمن البته معلوم است استاد ما آی خویی از هر در ایشان در رجاضشون همون یکی در اون مصادر اولیه هست میاد این عنوان یحیی عبدالرحمن خالی رو ندارن و چون خودشون میگن که شیف. در رجال بن نبدالرحمان خالی عورده مناسب بودشونه یحیب نبدالرحمان خالی عورده بکتر فرد بلا چون بود در اونجا ایشون هم داره خودش میگه و اخراب اصحاب القاضب علی السلام مختصرا به قول بن نبدالرحمان خدا رسیده رویه خب این اختزانو میکرده عنوان بده روشنستو مقاعده که گفتم دیگه یا هر که دیگه که آیفوی ای هر عنوانی رو در سه تا محوره روایات کتب رجال و کتب فحارس است. یک قطب روایات در کتب عربه رجال و همین رجال محبود فحارس چند تا فحارس یه فحارس مثلا ابوگالی و زراری مداره میشون و فرمازی وقت انز کردی کاریشان کار, ایشان کار خوبیه. بسیار کار خوب. کار کنیم نیست اصلا. چون خودشون میگن در جالش مختصران مختصرن از یحیی بن عبدالرحمن این قائلش اختزام کرد که قبل از این ایشون انومنی که اینجا داده است فکری شد یحیی بن عبدالرحمن این قائلش اختزام میکرد که ایشان یحیی بن عبدالرحمن خالی به میوه بوده. روشن توضیح میکنم. آخری گفتن گفتن زرکر همون شیفتی رجالیه که از خواب کازو برشتن. بعد می گفتن که در عنوان آتی خواهید گفت که با اون متحد یاد و سنان این بابا سن قاعدش این می کن یعنی درسته از این ایشان مدیدی در روایات نیامده اگه در روایات بود که قرار دو گفتن اما معمی در کتاب رجال فقط رجالشه که تولسی و رجال برقی که ما انال برقی ارد یحیم مرد الرحمن از حاب کازم از سلام پس لازم بود مرموم اصدادی به عنوان دیگر می زدن حالا دیگر شان دوشنه رجالی اشتباه کردن یه عنوان یحیم مرد الرحمن تنها هم می زدن نحضهی بشینی که برای حاضر عنوان ذکر او شیخ و از حاب کازم که ما انال برقی از دوشنه ترتیب ترتیبش که اول برقی زمانه مقدم تا نگول باعث اعصاب الخازن که بر نشیر از دو تا اعصاب الخازن علصر است. این قرار اینو دین کردن اگر حالت رو خوردید، نکات مستفمنشی رو بگید. اگه نمی‌خوندیم اصلاً صحبت می‌کردیم، این ویژه کاردار نمی‌گفتیم. ایشون مثلا عقون فقط در ترجمه که یحیی بن حسان الازرع مثل ترجمه تعبیر و ترجمه شده یکم فنی نباشه. ولی مثلا فیزه چونشون در عنوان یحیب نهستانه ازر فقط ترام شیخ صدوق در مشیقه رو آوردن هیچی دیگه نه آوردن رو فقط عبارت شیخ صدوق رو آوردن چیز دیگه نه آوردن یک عبارت مشیقه ترجیم نیگه عنوان بهتر بود تقدمی که عنوان یحیب نهزر ماله رفتون به مقاب و اگر یادشون هم باشن با دیگه خیلی ما نمکنیم کنیم استاد بلان خطی صحبت بکنیم چون دیگه گفتیم بله اگر نمیگفتیم بکردیم از کردیم تصادفا اون مطلب ایران که ایشون اووردن در زیل ارمان یحیبن حسان ارمان زیل ارمان یحیبن حسان کوفیه یحیبن حسان کوفی در زیل اون یک ابولوی دارن ایشون این مال خیلی میخواهم عرض بکنم که از الان عادت کنیم که خلاص کاملا دقیق و ظریف باشه کلمه ترجمه اون نیست ذیل عنوان یحیی بن حسان کوفی چون در بیه کلی سند الابعر ترجمه ندارن ولی مثلا نفر به واسه چه صدوق در مشهد آورده مالحو رخصل بالمقام این مالحو رخصل بالمقام ایشون واضح نیست و خلاصه هر دیشون یه یه‌یار ارزدار یه‌یار به حسان ارزداره. چه درک می‌کنیم داره باید بگی که در اونجا جایی یه‌یار نادر احمدی نیستن. حالی به ملاقات می‌خوایم. به ملاقاته. که به ملاقاته یه‌یار این نیست چون اون آواه هست فکری آوانی نیست به ملاقاته اینجوری در ترجمه یه‌یار به حسان الكوفی اسمی از یه‌یار نادر احمدی و از ایشون گفتن که از این عبارت میشه که یحیب نه یحیب نه حسان نه از عبارت مرحوم صدوق در مشیخه بسیار خوب ما لگ به مقام بعدن از خرده مرحوم استاد در تقابل اجارشون در بخش فهرستی متعرض فهرست شیخه سلسی میشن متعرض فهرست مرحوم نجاشی نشونده ایشون مرهوم آی احسانی در این تحضیب المقام مقام فکر میکنم خیلی اولین نفر باشه در این رو نیکنم فکر میکنم اولین نفری که ایشون هستانی به مرحوم نجاشی با هم تنبیه کرده مثلا صحیح هم زریع هم قطیه بیادا تو سریع مبانی دادن به هر حال، شاید اون دقتهای لازم یا مبانی دقیق نباشه اما به هر حال، ایشون این کار رو انجام دادن اما مرحوم اصداد این کار را انجام ندادن. راجب کش کشت نجاشی انجام ندادن. توستری را انجام نداده. تو قامون سیشون هیچ کنون که انجام نداده. صورم توستری چون عبارق سکنگیر مقال مرمومانگالی و مثلا باسه رو نرمی کنه اصلا عبارق مرمومانگالی هم ناقص نرمی کنه مثلا قسمتی که مرموزه به اصلا اجازات میشه ناقص میگه که خبیه خلاف قاعده هم هست. بعد می فرماید که لاترین شیخ علیه زریعی کنه از در نقطه یکی وجود عبای مفضله ولی که در طریقه دوبه آسم توضیحات, توضیحات که مارون موانی ایشان هم هست مدنای توضیح عبای مفضل عبای مفضل خیلی واسه حدیث سنگان بشه انات خاصی دارد اونا هم تضیح بشه یکی از چهره های به اسطلاح تحمل حدیث در دنیا شیعه از ما در دنیا شیعه مثل که هم سفر کرده در طلب حدیث اما به هر حال با نقید از اصحاب نایی زنتون بعد سرمودن روان عبی عبدالله علیه السلام و روان عبی علیه نعمان یک حاضر اسم تحضیب تنها دادن که علی نعمان ازشون نامون که از ما این مطلبیشون هم لطیفه این مطلب آقای خویی یعنی ایشون ما هم بگن که در کتاب تحضیح این عنوان هم وارد شده و عنوان هم یهیبن عبدالرحمن الازرده به خطور کده تب رو باید ایشون استخراج حدیث هست استخراج حدیث و همون عنوانیست که در پس با این مطلب چی شده؟ تا اینجا تا اینجا این شد که یهیبن عبدالرحمن الازرده کتاب هم هست تو کتاب رجال هم هست رجال شهر توسی تو کتاب فهارس هم هست فهرس نجاشی و شهر توسی روشن شد میگرد آرخوی این مطلبش آوردن این دستبنگیش من عرض کردن این دستبنگیش رو خیلی راحت میکنه پس معلوم شد این رو میشه شما در هاشی این کتاب ها بمیزین یعنی شما یه میشه بودشون پس معلوم شد که تا اینجا و رواهن عبدالحسن و رواه ها سطمان و علیون نومان بازم تحضیح حتی این مطلب هست این که به قسم کامل آمده یه یه عبدالرحمن ازور این منحسرم در تحضیحه این یعنی در کافی من راست آزکار از این هم باز آزکویشه از اوزر بشه هم توضیح هم این چیز عجیبیه منحسرم در تحضیحه و اشون از کافی هم نگرسیم مثلا از یا حسین سعید گرسیم این مخابر ما تا اینجا تعییمون اینه که بحثایی از رجال به ببینداری که با فقه ما ارتباط داره اون بحثای رجالی صرف و شرهال و اصانی و توقات خودش بحث خاص به خود چی داره و اندازه مناسب با ما نهنفی سواره کنی ورم وامنبله و اینم تحضیح, تحضیح, تحضیح خ خب تا اینجا من جنبر میگو کنم مساله رو نعلوم شد که مرحوم و حالا یک عنوان بیه از رقه تنها نشد من جلد 22 یا 22 نگاه کنم من تنها رو ببینم که آیا از ایشون هست یا نه یا در روز شنده رو نیگیش شنده رو از آواز مخیلی تعدیب کنیم من حالا خیلی سینم داره هرزی داره کنیم به این قرصت دوباره نبیم تعدیبه شنبه رفنید دو شنبه که گلازه پیغمبر رفن و ایمان ساده تا که تا اینجا اناوینی که جاده شد و شهرش این شد یک عنوان یحیل ازرق بود این در کتب لجال ما هست در کتب روایات ما هست یحیل ازرق و نصف هم از از موتنابه یا ارخوی سیگیش نمیشن خب اما در فهارت ما نیست در رجال در. دو عنوان یحیب حسان تنها این فقط الان در رجال ما هست سه به حسان کوفی این هم تو رجال شهر سوسی آمده فقط در روایات ما نیست در فهارت ما هم نیست چهار عنوان یحیب نحسان لعظرن این عنوان از تمام خوبی دسته بندی نداره بیدن این عنوان به کامپیتری هم هست که اینا نوشن اینم متاسفانه رحمت کشیدن اینا کار خوبی کردن این دسته بندی ها خیلی مؤثره این دسته بندی هر عنوان یه یه حسان الازور در کتوب حدیث ما نیست در رجاع ما هم نیست در فهارت ما نیست فقط در مشیخه شیخ صدوق آمده <تصفيق> و دیگه عنوان و ماکا نفیه هم یحیل از از مورد از فدوق اسم یحیل از از دو مورد اتدا کرده چهار مورد راسته داره هیچ کده بشن از این عنوان نیست فقط یحیل از رفت تو مشکشهش نویشت و از رفت از برد سند الا عبانه به اسمان هم یحیل نحسان آخرش ما به استثنا این مورد همچه عنوان رو هیچ جا نداریم نه تو روایات داریم نه در کتاب رجال داریم نه در فحادث داریم این تایید چهار تا عنوان پنج عنوان یحیی بن امضاعتمان تنها این رو در رجال شیخ و برمی داریم در فحادث هم نداریم در فحادث هم نداریم شش این هم در روایات داریم و در تحضیب ازادیم دا در کتب رجال داریم هم برقی و هم مرموم شکل و در کتب فحارس هم داریم هم شیخ و هم نجاشی این مجموعه ي... دست و بدگیار روشن شد فکر میکنم با همین به خلاف تصوراتی که مرموم اصطاق با همین مقدار تعملی رو که احسان میکنه این ردیف رو میبینه و با در نظر گرفتن که اون یه, یه از که در روایات مطلبه اجلا اطایفه مثل صرفان از اون همون میکنه مثل علیبن نغمان. علیبن نغمان. علی این نقمان علیه این نقمان خوب علیه کسی که لب بالا شکافته روشه علیه نیسته رو حالا علیه این نقمان ایشون از اشون میکنه صرفان از یه مورد داریم عوان ازش رو نرمی کتاب فقیح داره عوان ازش نرمی مرد بزرگوار ایست و هرها کاملا حاکی از این است که این یهیل ازر بار همون یهیل عبدالرحمن ازر باشه اینه که مرحوم استاد به شاهد مشیخی شیخ قدو استظهار فهمدن یهیل حسانه ما الان از یحیب نحسان و اندره هیچ جا اس نداره کلا هیچ جا عنوان نداره نه در کتب حدیثی حتی خود طبیعی از ایشون داریم در هیچ کتاب رجالی چین عنوان نداریم در هیچ فهرسی از عنوان نداره منحسن از یک مورد به اون هم مشیخه شیخ فلو روزی این که حالا صدوق کجا آورده چیکار کرده شد میدونید ما طبیعتا هر تل مغضوع سریع ما اینه به نداشته باشیم داریم نیشه پیدا بکنیم در به عبارت این روزی صدوق رو رد بکنیم این منشأ کار صدوق چیه به احتمال چیه احتمالات پرامانی به ذهن میاد من خیلی احل احتمالات نیستم مصورم نزده جمه احتمالات تخبوره این باید این که در بعضی کتب اصول اصولی یکتن و یکتن اینو هم, یحتم هم. به درده نو خیلی اون رو نباید انسان سرفی این کار علایه حالا احتمالاتی که داده میشه زیاده در این مطلب مثل به طور کلی به دو احتمال برمیگرده به طور کلی طور طبیعه یکی این که در اون نسخه ای که در اختیار شیف صدو بوده اینطور بوده یعنی ایشون یهیر از رفت رو برده در نصحه ایشان با این سنده که گفته یهیر نفسان رو از رفت این به طور کلی حالا شاهدی داره نداره این بحث دیگر نیست احتمال دوم به طور کلی که باز هر احتمال مکنی به چند احتمال تقسیم بشه بارونه این که این استظهار شیخ صدوب باشه یعنی خود شیخ صدور در کتاب شرکن چیش با یهل ازاره تنها آورده اون دو جایی که افتاد برسید میشونی کرده استظهار ایشان این باشه که این یهلیان نه حساب حال این استظهار از کجا؟ اون بحث دیگری بگیم استظهار مرحوم شیخ این بوده پس ایلا به طور طبیعی به دو احتمال اساسی تقصیل میشن یکی اینکه در اون نصحهی که داشته این بوده تو نسخه اصاسان یهیر محسان بوده اما در در وقت دبشتانشو یهیر بزن احتمال دوم که ند تو همه مصدر اصلی هم کردش نهار کده یهیر عزم بوده خودش بعد استظهار کرده استظهار خود میشنه حالا احتمال اول میگم میزن درست بعدی احتمال دوم رو پردام توضیح ده منشه این احتمال چیه منشه این احتمال براتون روشن شد ما با شواهدی که عرض کردیم کتاب و یه یه مرد به نیامده ثابت نیست قومیازش نهار کردن کلیه نهار کرد صادو هم نیست که کتاب به آمده من عرض کردم تولید پیش ما در کوپه هست اما درد به قوم آمده به بغداد آمده به شهر دیگه رفته این توضیحات سابقه گذار روشن نیست کتاب یه یه مرد دارم از وقت به قوم آمده روش. با اون چند که ما در فحادث دیدیم از بغداد به کوفه رسید اما در روایات از شیخ خدو عنوان یحیل از دیده دیگه خودش هم ارده و احتمالا رجال برقی هم پیشش بوده به احتمال مثلا در همه دیگه دیده مرحوم برگی یحیل عبدالرحمن از رقه رو در اصحاب امام ساده مورده یحیق نه عبدالرحمن رو در اصحاب امام کاظم مورده یحیی نه حسان رو فقط در اصحاب امام ساده مورده به واقعه اینی که اشون نهمی کرده اولیش از, دومیش از امام ساده رو کرده احتمال داده ایشان که یحیی از رم با جمع شواهدی در رجال برقی بوده این یحیی نه حسان باشه. و از اینجا محلی نقطه دیگه بگیم حالا وقتم گذشتی هست بگیم شاید شاید در ذهن اینها یه مطلبی بوده شاید در حد شاید احتمال بحامل راکه احتمال ایست که مرنا داره و اون این که شاید در ذهن اینهای بوده که یحیل از وقت اگر از عبل حسن کازم باشه این عبدالرحمنی بوده سر اگر از امام صادق باشه حسانه شاکوزه اینا این بود یا اگر از امام صادق باشه محتمله بین حسان رو بیندارن محتمل حالا یاره این نهایت درجه است که ما در این جهت میتونیم بگیم و احتمال دیگری که نتیجه ندارن به انصافن اگر این مقدمات درست باشه و صدوق چین تصوری فرموده اگر درست باشه انصافن درست نیست خطا یه درست نیست. واقعا بدی میبینیم صدوق اینجوری تصرفات می‌کنه لذا احتمال بیشتر این می‌مونه که در نُسخه ایشون باشه حالا فردا ان شاءالله فردا این بحث و بررسی می‌کنیم که آیا در نُسخه ایشون بوده یا نبوده آیا مطلب درسته است یا نه یا اون نُسخه یک مشکلی داشته یک غلط داشته. شده می‌میای در جلسه آیده ایشون تا اینجا ما این شواهدی که اقامه کردیم با تامل یهیل از ورد یهیل از عبدالرحمن از که و سره انصاری بوده بشن شیخ خیلی منابش من نجاشی در در رجال و زبیر